نوار با همکاری نشر نی تقدیم می ما ایرانیان وشتگی مقصود فراست خواهد. اول، طرح مسئله و مفروزات در این بحث از چه خطاهای معرفت شناختی پرهیز کنیم؟ بحث چیست؟ در گفتگوی مردم کوچه و بازار و نیز در بسیاری از آثار شرخ شناختی و ایران شناختی، و حتی آثاری که خود ایرانیان نگاشتند، گزاره وجود دارد که در آنها درباره روحیات و خلقیات ایرانی سخنگفته می شود. مثلا می گویند، ایرانی ها زیاد دروغ می گویند. کم کار می کنند. فعالیت مشترک جمعی و گروهی در بین آنها ضعیف است. دروغی در میانشان رواج دارد. احساساتشان بر خردورزی چیره می شود. خود مدارند. و به سختی می توانند توافقهای پایدار انجام دهند. اینها نمونه ای از گزارههایی است که در کتابها و همینطور بین مردم کوچه و بازار در میهمانیها ها، دید و بازدیدها و غیره به چشم میآید. این زاره مدعیاتی درباره روحیات، خلق و خوها و عادات ایرانی است. فرهنگ این سرزمین، به معنای جامعه شناختی و مردم شناختی کلمه، اساساً قابل فروکاستن به خلقیات نیست. اگر تعریف تایلور را به منزله کلاسیکترین تعریف فرهنگ در نظر آوریم، فرهنگ الگوهای آموخته است که خود را با تجلیات متنوع اجتماعی نشان می دهد. به این معنا نمی شود فرهنگ را به خلق و خوها، آدات و روحیات فروکاست، این الگوهای آموخته عناصر گوناگونی را دربر میگیرد و تجلیات فرهنگی مختلفی را منعکس میکند الگوهای آموختهای که یک فرهنگ را تشکیل میدهد عناصر متنوعی دارد برای مثال عناصر زبانی مانند خط و گویشها عناصر ذهنی مانند استورهها عقاید باورها آرمانها نگرشها جهانشناسی و دانش و معنا عناصر ارزشی و هنجاری مانند اخلاقیات حقوق عرف و قوانین عناصر احساسی و زیباشناختی مانند هنر و ادبیات عناصر رفتاری شامل سبک زندگی تولید مصرف گرایشها عادات و منشها عناصر نمادین مانند آ آداب، رسوم و تمثیل‌ها عناصر مهارتی و فنی شامل شیوه های ساخت ابزار، فنون، صنایه و سک های معماری و در نهایت عناصر نهادی شامل مناسبات و ساختارها فرهنگ ایرانی نیز از چنین الگوهای آموخته‌ای به وجود آمده و رنگین کمانی متنوع است و نمیتوان آن را به خلق و خوها آن هم با روایتی یکسر منفی فروکاست. شواهدی از روحیات و خلقیات مثبت نیز در طول تاریخ در میان گروهها و قشهای اجتماعی این دیار در دست است. فرهنگ سرزمینی مانند ایران با تنوع اقلیمی قومی و مذهبی زیادی که در آن وجود دارد، قابل تقلیل به یک وجه محدودی از آن نیست. گذشته از این گوناگونی‌های دیگری در فرهنگ ها وجود دارد. به طور مشخص، فرهنگ توده تفاوت با فرهنگ نخبگان دارد. در کنار فرهنگ عمومی، خورده فرهنگ وجود دارد. در برابر فرهنگ مسلط، فرهنگ های ای هست. فرهنگ قشر متوسط و قشت های دیگر فرهنگ ملی و فرهنگهای قومی اینها نشان میدهند تنوع زیادی در فرهنگ ما وجود دارد از سوی دیگر فرهنگ و از جمله خلقیات و روحیات مردم طی زمان و در شرایط مختلف در تعامل با محیطهای متفاوت هرچند به كندی تطور مییابد در مجموع فرهنگ و رفتار جمعی قابل یادگیری و اکتساب است و تغییر میکند کند. بنابراین، سخن گفتن از فرهنگ ایرانی و به طور خاص روحیات ایرانی به مصابه یک مفهوم ایستا و امری ثابت توجیه منطقی و علمی ندارد روح ایرانی ماهیت متعین و ثابتی نیست که با ذات باوری و به سهولت بتوان از صفات و خصوصیات آن سخن گفت پس در این کتاب میکوشیم به حکم منطق حداقل از دو خطای فاحش پرهیز کنیم. نخست تقلیلگرایی اینکه نگاه جامع و گرایانه به همه وجوه و ابعاد فرهنگ ایرانی نیندازیم و از تنوع و گوناگونی آن قافل بمانیم دوم، نگاه ایستا و ذاتباورانه به روح ایرانی که موجب نادیده گرفته شدن منطق تحول و پیچیدگی در فرهنگ و نگرشها و گرایش ها و رفتار جمعی ایرانیان می شود. اما آیا واقعا این ملاحظات می صورت مسئله را پاک کند؟ شواهد حکایت از آن دارد که بخشی از خلق و خوهای ایرانی بحثانگیز بوده است. در گزاره های مردم کوچه و بازار نیز با این نوع ادعاها مواجه هستیم شاید به تناوب و البته با فراوانی قابل توجه در مناسبت های مختلف مستمع لطیفه ها، ها و زربلمسل هایی در باب ما ایرانیان بوده اید یا این گونه عبارات را اینجا و آنجا به جد یا برای مزاح نقل کرده اید و اگر ارتباطات ایمیلی و مانند آن دارید پی در پی با پیام ها و عکسهایی حاوی این و مطالب مواجه شده اید. از قبیل این مثالی که نظیرش در جعبه پیام های نویسنده فراوان است. خواب دیدم قیامت شده است. هر قومی را داخل چاله ای عظیم انداخته و سر هر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند. الا چاله ای ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم، این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگماردند؟ گفت میدانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله. خواستم بپرسم اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند که نپرسیده گفت گر کسی از ما فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی لنگش کشیم و به ته چاله بازگردانیم. بخشهایی از متنی که در وبلاگ یک ایرانی ساکن کانادا آمده، چنین است. بگذارید برایتان بگویم چه چیزهایی در ایران آزاد است که مردم خیلی کشورها حتی جرأت ندارند به آن فکر کنند. پیادهها مجبور نیستند دنبال محل عبور عابر پیاده بگردند. آنها آزادند هر جا دلشان خواست از خیابان رد شوند. پدر و مادرها آزادند بچه‌هایشان را کتک بزنند. هر کارمندی حتی به دلیل اینکه از چشم و ابروی ارباب رجوع خوشش نیامده، آزاد است از کارش را انجام ندهد. مغازه‌دارها آزادند هرطور دلشان خواست جنسشان را ارائه کنند. پلیسها آزادند جریمه رانندهها را به صورت نقدی و با تخفیف بگیرند. در هر مکان عمومی یا خصوصی سربسته یا روباز، هرچند چند آدم ها نشسته باشند، مهم نیست. هرکس بخواهد میتواند سیگار بکشد. و دودش را به حلق بقیه بدهد. گاه در این نوع ادعاها ها پا فراتر گذاشته می شود و این بار می یا میشنویم غربیها غربی ها چنانند و ما شرقی ها چنین. مثلا اینکه وقتی وقت غربی ها می گویند ساعت دوازده می آیند یعنی درست سر ساعت میآیند. ولی وقتی جماعت شرقی می گویند ساعت دوازده می آیند ممکن است ساعت یازده یا دو بیایند. اما این ادعاها چقدر صورت علمی دارد و درباره آن بررسی شده است؟ برای مثال، آیا واقعا شواهدی برای این که گفته می شود ایرانیان در کار جمعی ضعیفند وجود دارد؟ عوامل موثر بر شکل گیری این عادتها و رفتارها چه بوده است؟ این روحیات، خلقیات و الگوهای رفتاری چه آثار و پیامدهایی در جامعه ایران به آورده است؟ مثلا اگر در کار جمعی ضعیف بوده ایم نتیجه اش چه بوده است اگر اخلاق کاری ما ضعیف است چه نتایجی داشته چه تغییراتی در زمینه ارزش ها و نگرش های ما طی زمان به وجود آمده است مثلا ممکن است گفته شود در فرهنگ ما در دهه بعد از انقلاب تغییراتی اتفاق افتاده چیزهایی که در فرهنگ عمومی ما چندان غالب نبوده غالب شده یا مؤلفه‌هایی در فرهنگ عمومی ما وجود داشته و از بین رفته است. علت چیست؟ از زمانی که مرحوم اسدی توسی در سال 1353 پیمایشی در این زمینه انجام داد تا پژوهش منوچهر محسنی در نیمه اول دهی هفتاد و پیمایش ملی 28 استان که در سال 1382 منتشر شد چه تغییراتی در ارزشها؟ نگرشها و رفتار ایرانیان رخ داده است و چرا؟ برای مواجهه مطلوب با وضعیت بحث برانگیز در خلقیات و روحیات ایرانی چه میتوان کرد؟ اینها پرسش های مهمی هستند که ارزش اندیشیدن دارند. پیمایش آزمایشی و اولیه پایلوت برای بررسی بیشتر موضوع یک پیمایش آزمایشی و اولیه در سطح ملی انجام دادم جامعه آماری در این پیمایش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور بود پیمایش به شکل الکترونیکی انجام گرفت و دیدگاه‌های گروهی از نخبه های کشور که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی فعال هستند گردآوری و تحلیل شد هرچند اعضای هیئت علمی نمی توانند معرف تمامی اندیشمندان و ظرفیت فکری جامعه کنونی ایران باشند، دست کم نمونهای قابل دسترس هستند. خلاصه ای از نتایج پیمایش، ارائه می شود. پیمایش در سطح ملی بود و پرسشها از طریق پست الکترونیک به اعضای هیئت علمی دانشگاهی های استانهای کشور فرستاده شد. 74 درصد اعضای هیئت علمی کشور که به پرسش نامه ها پاسخ دادند زن و 82.6 و درصد مرد بودند. میانگین سن آنها 43 سال بود. 84 درصد زیر 3 سال، 34.9 درصد بین 31 تا 43 سال، 37.9 درصد بین 41 تا 55 سال، و 19 و 6 ده همه درصد بین 50 تا 61 سال سابقه عضویت در حیعت علمی کمتر از 5 سال حدود 13 درصد بین 6 تا 10 سال 21 و 2 ده همه درصد بین 11 تا 15 سال 24 و 6 ده همه درصد بین 16 تا 20 سال 18 و 19 ده همه درصد و بالای 21 سال 22 و 2 ده همه درصد بود میانگین اوزویت پاسخگویان پانزده سال بود. کسانی که پاسخ دادند به طور میانگین سابقه اوزویت نسبتاً قابل توجهی در حیعت علمی دانشگاهها داشتند. در توضیع جمعیت پاسخگویان بر حسب مرتبه علمی استادیاران بیشترین بودند. اتفاقاً در اعضای حیعت علمی کشور هم وضع همینطور است. مربیان بیست و نه و درصد استادیاران چهل و چهار و دوده همه درصد، دانشیاران پانزده و سه درصد و استادان هفت و سه درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند. حدود چهار درصد نیز افرادی هستند که رتبه علمی مشخصی نداشتند یا نگفتند. بر حسب نوع دانشگاه، بیشتر پاسخگویان اعضای حیعت علمی دانشگاه های دولتی بودند، از کل پاسخگویان 17.2 و و درصد در دانشگاههای دولتی از هیئت علمی بودند و 28 و و درصد در دانشگاههای غیر دولتی. بر حسب گروه رشته تحصیلی 17 و 4 درصد پاسخگویان در رشتههای علوم پایه، مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره بودند. 31 و یک و یک درصد علوم انسانی و هنر با هم، 6 و 4 درصد علوم پزشکی، بیست و هشت و درصد علوم فنی و مهندسی و پانزده و یک دهم درصد کشاورزی و دام پزشکی. آشکار است که اعضای هیئت علمی در حوزه علوم انسانی حجم و اندازه بزرگی دارند. از جامعه آماری پرسیدیم آیا موافقید که خلقیات اجتماعی در ایران ضعفهایی دارد؟ آیا موافقید بگوییم خلقیات ایرانی بحث است؟ نوید و پنج و درصد به درجات مختلف و کم و بیش موافق بودند که خلقیات ایرانی مشکل دارد. البته باید در تعمیم احتیاط کنیم. نمیتوانیم این داده ها را به کل متفکران جامعه تعمیم دهیم. پرسیدیم آیا اساساً میتوانیم از روح ایرانی صحبت کنیم؟ آیا می توانیم از چیزی به نام روحیه ایرانی سخن بگوییم هفتاد و یک و درصد به درجات مختلف موافق بودند که با وجود همه تحولات، تنوعات و پویایی هایی که در فرهنگ ایرانی هست چیزی به نام روح ایرانی و روحیه ایرانی وجود دارد. سوال کردیم اگر روحیات و خلقیات ایرانی بحث انگیزه است بیشتر به کدام معلفه ها از خلقیات ایرانی مربوط می شود؟ بالاترین جوابی که در بحث‌انگیز بودن خلقیات ایرانی دادند ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی است. در درجه بعد انتقاد انتقادپذیری را بحث‌انگیز دیدند. اینکه ایرانیان از انتقاد آزرده و ناراحت میشوند و وقتی کسی از آنها انتقاد کند به دل میگیرند. در درجه سوم به رودربایسی زیاد تعریف و تمجید در حضور یکدیگر و قضاوتهای منفی در قیاب یکدیگر اشاره کردند. گفتند تعریف ایرانیان در حد واقعیت و رفتارشان نیست. در درجه چهارم گفتند ایرانیان معمولاً پنهانکاری می کنند و غالباً شفاف نیستند. در درجه پنجم گفتند ایرانی ها خود مدارند. بیشتر خواسته خود را مبنا قرار می دهند. بیش از اینکه به خواسته های جمعی و گروه و منافع عمومی فکر کنند میخواهند خود را نجات دهند و گلیم خود را از آب بیرون بکشند در درجه ششم معتقد بودند احساسات در ایران بیشتر بر خردورزی چیره می شود در درجه هفتم گفتند دروغ بین ایرانیان رواج دارد و سرانجام معتقد بودند ایرانی ها به سختی می توانند گفتگو و توافق پایداری انجام دهند این هشت مؤلفه بالاترین فراوانی را در پاسخهای پاسخگویان دارد از مخاطبان پرسیدیم اگر بخواهیم از چند مشکل اصلی و مهوری در خلقیات ایرانی یاد کنیم کدام را اصلی ترین و مهوری ترین مشکل می دانید؟ فرق سؤال پیشین با این سؤال این بود که در آنجا تنها بحثنگیز بودن در اقوال و آثار دیگران منظور می اما در اینجا پاسخگو نظر خود را بیان می کند. پاسخگویان در درجه نخست معتقد بودند مشکل خلقیات ما در پیوند زدن میان منافع فردی و عمومی است. افراد بیشتر گرایش دارند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. در درجه بعد، فاصله میان ظاهر و باطن و بین اظهارات و رفتارهای واقعی به منزله مشکل اصلی داد شد. در درجه سوم عبه هیجانات و تلقین پذیری بر استدلال ورزی و خردگرایی و اینکه ایرانیان بیشتر تلقین پذیر و هیجانی هستند تا استدلال ورز و خردگرا. در درجه چهار روم مطلق مطلقگرایی جزمیت و تعصب قرار گرفت. در درجه پنجم به تقدیرگرایی ایرانی ها اشاره کردند که جای تدبیر عقلی و اطمینان به نتایج کار و فعالیت را می گیرند. در درجه ششم بر بی نبود اعتماد به آینده و نداشتن اعتماد به سیستمهای اجتماعی تأکید کردند. در درجه هفتم به وجود ترس نهادینه در خلقیات ایرانی اشاره کردند که از خشم مقتدر و کینه بدخواهان و دسیسه‌ها و ناپایداری ها واهمه دارند و سرانجام آخرین شاخص که پاسخگویان به منزله مشکل محوری خلقیات ایرانی بر آن تاکید کردند، این بود که رفتارهای ایرانیان بیقاعده و غیر قابل پیش بینی است و نمی شود درباره آن به شکل مطمئنی پیش بینی کرد. سوال کردیم اگر در خلقیات ایرانیان ضعف وجود دارد وضع ما در مقایسه با سایر ملل چطور است؟ و 76, 76.6 درصد به درجات کم و بیش موافق بودند های موجود در خلقیات ایرانی در مجموع از های موجود در خلقیات ملل اروپایی بیشتر است 73 درصد معتقد بودند های موجود در خلقیات ایرانی از های موجود در خلقیات ملل غربی بیشتر است و 68 درصد اعتقاد داشتند ضعف های موجود در ایرانیان در مجموع از ضعف های سایر ملل آسیایی مثل چین، ژاپن و کره جنوبی که در حوزه توسعه نسبتا موفق هستند بیشتر است به همین منوال 60 درصد کم و بیش معتقد بودند ضعف های موجود در خلقیات و روحیات ایرانی در مجموع از ضعف های موجود در خلقیات ملل مسلمان نسبتا موفق مثل ترکیه و مالزی بیشتر است. پرسیدیم خلقیات ایرانی تحت تأثیر چه عواملی است: داخلی یا خارجی. در مورد عوامل داخلی نیز از ساختارهاست یا کنشگران. پاسخگویان در درجه اول معتقد بودند عامل اصلی، ساختارها و نهادهای جامعه مانند اقتصاد نفتی است. در درجه دوم بران بودند، ایراد کار از کنشگران است و تنها در درجه سوم علال خارجی مثل تهاجم نظامی، سیاسی، فرهنگی و دسیسه بیگانگان و چیزهای مشابه را ذکر کردند. همچنین نظر آنها را درباره انواع خاصی از عوامل پرسیدیم. پاسخویان در درجه اول عوامل معرفتی را در خلقیات ایرانی مؤثر دانستند. به نظر می رسد چون پاسخ اعضای هیئت علمی هستند و با فکر و تولید دانش انتقال و مبادله آن سرکار دارند به عوامل معرفتی توجه کردند یا به طور کلید دیدگاهشان این است که نگرشها و نقشه های ذهنی مردم سبب شده اینطور رفتار کنند. تصویرشان از عالم، آدم، جامعه، آینده، خود، ارتباطات و غیره و به طور کلی نگرش‌ها و باورهای آنها سبب شده اینطور عمل کنند یعنی مشکل را در ساختارهای شناختی و ذهن مردم جستجو کردند در درجه دوم کاهش سرمایه های اجتماعی را مؤثر دانستند و معتقد بودند اعتماد، پیوند، مشارکت و همدلی کم شده و این امر خلقیات ایرانی را دوچاره مشکل کرده است در درجه سوم معتقد بودند این وز در ساخت دولت در ایران ریشه دارد که غالبا اقتدارگرا و استبدادی بوده و این امر سبب شده مردم روحیاتی خاص داشته باشند. در درجه چهار بر مناسبات دین و دولت انگشت گذاشتند. به نظر این گروه از پاسخویان که گویا به طور عمده به شرایط سدهی اخیر نظر داشتند، خلط این دو مشکلات و آشفتگی‌های های رفتاری به وجود آورده است. در درجه پنجم معتقد بودند، نوع آموزه‌های دینی و برداشت از آن، مثلا تقیه و مانند آن، مشکل دارد و بر خلقیات ما تأثیر منفی گذاشته است. در درجه ششم، پرهادث بودن تاریخ ایران، و فراوانی تغییرات بیقاعده و سپس در درجه هفتم نوع مناسبات تولید و ساختار خاص اقتصادی و سرانجام کشمکش نخبگان نظر پاسخگویان را به خود معطوف کرد سوال کردیم چه راه حلی را برای ارتقاء خلقیات اجتماعی مؤثر می‌دانید؟ نکته مهم برای نویسنده که جنبه اکتشافی داشت این بود که طبق پاسخ دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور همچنان به کنش و اینکه می‌توان تغییر ایجاد کرد معتقدند. به تغییر باور دارند و خلقیات اجتماعی را قابل تغییر می‌دانند و به بهبود و دگرگونی امید دارند. حتی بعضی افراد حدود دویست تا 300 نفر علاوه بر علامت زدن در قسمت بسته پاسخ در قسمت باز دیدگاه خود را در این باره نوشتن وقتی آنها را مرتب و دستبندی کردیم دریافتیم امید اجتماعی در پاسخها مشهود است برخلاف آنکه شاید احساس شود در ایران دچار نوعی یعس هستیم در پاسخهای هیئت علمی امید اجتماعی کاملا محسوس بود با همه مشکلاتی که احساس می کنند به نظر می رسد، معتقدند می توان از جایی شروع کرد و کنشی انجام داد میتوان مداخله کرد و وعز را بهبود بخشید و خلقیات ایرانی را تغییر داد. اینطور نیست که خلقیات ایرانی ذاتی باشد و سرنوشت محتوم مردم این جامعه محسوب شود. آنها در درجه نخست بر آموزش تاکید کردند. آموزش و یادگیری در تمام عمر را به مسابه یک راه حل، مطمئنترین و پایدارترین روشی دانستند که میتواند عمیق، درازمدت، آهسته و پیوسته آثار خود را در خلقیات ایرانی بر جای گذارد. اینکه پاسخگویان آموزش و یادگیری را در درجه اول اهمیت قرار دادند، نشان از آثار تجربیات حرفه‌ای ایشان دارد. دومین عاملی که تأثیر زیادی برای آن قائل شدند، برنامه های توسعه فرهنگی مانند گسترش ارتباطات و رسانه هاست. عامل سوم را برنامه های توسعی اجتماعی دانستند. اینکه باید نابراابری ها رفت شود و حاشیه زودایی شود. باید شکاف مرکز و پیرامون از بین برود. هاشیه ماندگی پیوسته مسئله ساز و آسیب و به مسئله اجتماعی از قبیل طلاق، خشونت، دزدی و بزهکاری اجتماعی منجر می‌شود. حاشیه برای زندگی اجتماعی ناامنی ایجاد می‌کند. برای اینکه آسیب‌های اجتماعی کم شود، باید حاشیه زدایی کنیم. در توسعه اجتماعی بر این مسئله تاکید می‌شود. مردم بر اثر توسعه اجتماعی احساس هویت و مشارکت می‌کنند. اعتماد و تعهد و همدلی اجتماعی بیشتر می‌شود و اینها سبب توسعه خلقیات اجتماعی می‌شود. عامل چهار م وضع قوانین خوب است. مثلا اگر قانون ترافیک اثر بخش باشد مردم خوب رانندگی می‌کنند. اگر قوانینی با زمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد، به طب مردم عادت می کنند رفتارهای خوبی بروز دهند. در نتیجه، برای تعمیق هنجارگرایی اجتماعی باید از قانونگذاری شروع کرد. قانون خوب و محیط حقوقی مناسب می‌تواند خلقیات اجتماعی را ارتقا دهد. عامل پنجم تقویت اجتماعات محلی و نهادهای شهر و روستا، محله و همسایگی است. عامل ششم ایجاد شغل و درآمد و رفاه و فقر زدایی و عامل هفتم توسعه سیاسی و اصلاح نهاد دولت عنوان شده است. مهمترین تفاوت معناداری که در این تحقیق به دست آمد این بود که هرچه پاسخگویان سن بالاتری داشتند بیشتر به وجود مشکلات در خلقیات ایرانی قائل بودند همچنین هرچه چه رتبه علمی بالاتر بود موافقت با مشکلات خلقیات ایرانی بیشتر بود استادان گروه علوم انسانی به طرز معناداری موافقت بیشتری با این مدعا داشتند آقایان به طور معناداری بیش از خانومها موافق بودند که خلقیات ما بحثنگیز شده است مداقه بیشتر درباره نتایج پیمایش از طریق یک بررسی اجمالی کیفی همانطور که ملاحظه شد بیشتر نخبه های کشور در اظهار نظری کلی با این موضوع موافقت دارند که خلقیات ما ایرانیان بحثسگیز شده است. برای مدااقه بیشتر در این مورد از دو روش کیفی استفاده کردم. نخست اینکه در جلسات هماندیشی با حضور تعدادی از خبره ها و نیز فعالان نسل اول و دوم اجتماعی طرح بحث کردم و دیدگاه آنها را جویا شدم. برخی از طریق شرکت در گفتگوها و برخی با ارائه سخنرانی در باب یک بود از موضوع دیدگاه های خود را اظهار کردند. علاوه بر این یکی از دانشجویانم های عمیقی در این موضوع با تعدادی از این افراد خبره انجام داد. و نتایج آن را در اختیار من گذاشت علی رضا قولی گفته است در مردم ایران نیز خلاقیت دیده می شود ولی سیستم اجتماعی طور است که آن را از بین می برد به طور کلی شرایط در ایران متفاوت است نظر قلام رزا جوادکاشی این است صفات یک ملت ذاتی نیست بلکه ناشی از زندگی جمعی است و با تغییر اوضاع بهتر یا بدتر می شود محمد امین قانعی راد معتقد است نمیتوان از غرب تصویر مثبت و از شرق تصویر منفی داشت نمیتوان گفت همه ی ایرانی ها زرنگ یا احساسی و یا چنین و چنان هستند ساده انگارانه است ایرانی ها را با چند صفت کلی توصیف کنیم محمد ترکمان تاکید کرده است به رغم وجود برخی مشکلات در مردم این سرزمین ظرفیت های بسیاری برای تحول و بهبود وجود دارد. محمد حسین بنی اسدی بر امکان اصلاح از طریق عمل اجتماعی در مقیاس بزرگ چشم دوخته است. رای های تکساحتی کارساز نیست باید تغییرات در تمام سطوح سیاسی، اجتماعی، آموزش و پرورش و خانواده صورت گیرد. علی قاسمی بر این نظر است که نمی توانیم یک یا چند منش پایدار را به همه ایرانیان تأمین دهیم زیرا خرد فرهنگ های هم از درون لایه های اجتماعی برمی خیزد که از منش پایدار و مسلط تبعیت کامل نمی کند ناصر تکمیل همایون معتقد است ایرانی ضعف هایی دارد اما آیا در کشورهای دیگر نیز انواع دیگری از ضعف مثل لذت طلبی مال دوستی خودخواهی و کم بودن روحیه گذشت و فداکاری دیده نمی شود. حبیب الله پیمان تأکید می‌کند زندگی ایرانی در سایه روشنی مداوم رقم خورده است شک و یقین همیشه با هم هستند از طرفی در برابر تهدیدها باید طوری رفتار می‌کردیم که نظر مثبت آنها را جلب کنیم و این باعث دو و دوگانگی رفتار می‌شد و از طرف دیگر همین ایرانی در برخورد با کشاکش‌های زندگی نرم و منعطف بود طبیعت این سرزمین روی رفتار و خیال ما تأثیرات لطیفی گذاشته که غربی ها فاقد آن هستند ابراهیم فویوزات قائل به این است که روح سازگار ایرانی را نمیتوان صرفا مثبت یا منفی دانست همین سازگاری گاه با جلوه های مطلوبی از رفتار خود را آشکار میکند سارا شریعتي سوال میکند باید دید در قرن بیست و یکم و با وجود پدیده جهانی شدن تکنولوژی ارتباطات، متکسر شدن جهان و قطع, قطع شدن جامعه و مهاجرت های وسیع آیا میتوان از چیزی به نام روح ایرانی سخن گفت؟ حاصل این بررسی های کیفی اجمالی مرا در فرض اولیه خود راسختر کرد. در حقیقت موضوع به آن سادگی نیست که گاه در مشهورات و ملفوزات مربوط به خلقیات ایرانی منعکس میشود. درست است که خلقیات ایرانی بحث‌انگیز شده اما نباید به این موضوع ذات باوران نگریست این امر به ایران اختصاص ندارد همه ی جوامع کم و بیش ضعفایی در اخلاق اجتماعی دارند در ایران نیز شواهدی هرچند در خور توجه به چشم میخورد. باید مسئله به صورت دقیق‌تری بررسی شود و ابعاد و زوایای آن به درستی کابیده شود. فراز و نشیبهای تاریخیش دیده شود و عوامل آن شناسایی شود. برخی شواهد مبنی بر وجود زعفهایی در خلقیات ایرانی نباید به نادیده گرفته شدن نقاط قوت بینجامد. گذشته از این نمی شود مردم را یکاسه کرد. باید به تفاوت رفتار در میان گروه های مختلف اجتماعی در دورههای متفاوت توجه کرد. خلقیات تحت تأثیر عوامل تغییر می کنند و بهتر یا بدتر می شبند. مردم می یاد بگیرند، طور دیگر ببینند و طور دیگر زندگی کنند.